حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازید با اش دل ببندید از واک دل هیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم اینجا رادیو پس شماره 996 من فرشید و منافیم و امروز دوشن اسفند 1734 با شما این مورو بریم خوشین، این چه خبرو؟ چه کار میکنین؟ چهار تا دیگه به جز این برنامه دیگه نمونده ها یعنی با این برنامه پنج تا برنامه به جز این چهار تا نبود؟ بود؟ بیا بالا، شهرام سامی سوارش کن از برد دامن کشان رفتم اینا مهربان از منه آزاد از دل ای دگر بینیم نشان رفتم که رفتم خلا. رفتم که رفتم جهادستم از اسما آقا دمتگرم نازه نفست ببینین ایشون کنار اومده با واقعیت پذیرفته یعنی خیلی مهمه که آدم بپذیره که آقا برنامه داره تموم میشه و از این کار و خشم و اینا دیگه گذر کنین جان؟ یک دیگه هم شما هم بیا بالا شما هم بیا بالا حالا بزا برام دوباره آهنگ ملی روبابه بزا بزا آهنگ ملی سرود ملی فرشته این خیلی وقتو نرسید طالب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 فرشید جونم گولاخ من <تصفيق> چطور دلت میاد مرا هفته دیگه بذاری بری چطور چطور فرشید تو با ما چیکار کردی ها؟ با خودت چیکار کردی نرو فرشید جون نرو مازیارم از یک کم این ورتر من این دوست ما هنوز کنار نیومد ها خیلی ها مسج دادن پیغام دادن مثل ابر بهار عشق ریختن ولی افسوس که واقعیتو نمیشه تغییر داد افسوس هفت حالا بلکن هوار به این سالاق برنامه امروز میخوام در مورد نستالژی هایی صحبت کنیم که یک سرش به مکان ها و موقعیت جغرافی های جغرافیایی وصله دیگه دیگهالا همتون اینجور نستالژی رو تجربه کردیم که مثلا وقتی از شهر خودتون دور میشین میرین یه شهر دیگه یا حتی کشور دیگه دلتنگ محله و شهر و خونه سابقتون میشین. هستن کسانی که بیرون از ایرانن بعد مثلا شب و خواب می این برج آزادی رو همچی سفت مح بغل کرده. ما ماچش میکنن دارن های های اشک میریزن یا دلشون حتی برای خوردنی های تنگی که مثلا تو ایران هست تو خارج نیست. آقا چرا اصلا راه دور بریم آدمایی که تو شهر خودشون زندگی میکنن و به بعضی جاها و ها و محله ها یا حتی بعضی کافه ها و رستوران ها یه حس عجیب و نوستالژیکی دارن. امروز میخوایم با هم کمی در مورد اینجور خاطر بازی مکانی صحبت کنیم و دوری بزنیم توی مکان ها و خاطرات کوچه خیابونی پس برو بریم چه روز کلی داریم. جان. سلام بزن فرج چنوزه میره خودم علمم از خاص خاصه کاری میکنم میذونم که علانم که میگفتی بانه داشت تامل میکردی با خدافس کوروشم از ژاپن کوروشا شما با من صحبت میکنید شما چرا اینجوری سکسی مخملی میکنی قشنگ معلم بود صدای اصلیش اینجوری نبود خدا خود آلندلون هم ما کاراموز به کسی نمیدین بفرمایید آقا ترجمه نکنید بله این صداشو خیلی قشنگ میفرشید جان باز گفت بله بله همین بله بله رو گفتیم ملت خیال خام برشون داشته فکر کردن خبریه بله هی بله باز دوباره دوباره نمیدیم آقا جمع نشین متراکم لطفا لطفاً نمیدیم دخترامون میخوان گفتیم درس بخونن میخوان درسشون ادامه بده خب از بحث بله و خاصگاری و این حرفا که بگذاریم بریم سراغ شیخ روحانی دیروز شیخ حسن روحانی نشست خبری داشت یکس از خبرنگارا از ایشون درباره وضعیت ممنوع تصویر بودن آقای محمد خاتمی سوال کرد و گفت آقای محسنی اژئی سخنگوی قوه قضاییه گفتن که ممنوعیت هایی که برای آقای خاتمی ایجاد شده مصوب شورای عالی امنیت ملیه و خواست که شیخ حسن رئیس جمهور خیلی شفاف به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این مورد توضیح بده. آقای هم اینجوری گفتن؟ شورای عالی امنیت ملی مباحثی در این زمینه ها داشته. من قبلن هم در یه مصاحبه دیگه اعلام کردم. گفتم هیچ مصوبهی در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته نداشته اصلا قبلا این حرفا به شوخی بیشتر شو باید داره تا به واقعیت بله یعنی این... یعنی همینج شوخی شوخی خمی ممنوع تصویر و ممنوع مصاحبه و ممنوع همه چیزه و شوخی شوخی چه روز میشم نتونست تو عروسی دختر مصوی شرکت کنه و اتلا مصوی و کردبی هم همین اینجوری شوخی, شوخی شوخی تو حسران. یعنی اینجور شوخی فقط از خود ما له بر میاده فقط. فقط. حالا بدون شوخی یه نکته جالبی همیون حرفای شیخ خسم بود ایشون گفتن حضرت آقای خاتمی یعنی اولین بار بود که بعد از مقضوب شدن جناب خاتمی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به ایشون میگه حضرت آقای خاتمی حال امیدواریم روزی حکومت دست از این شوخی های به اصلاح خرکیش برداره لاقل اگه کسی هست یا ممنون تصویر یا ممنون همه چیه؟ یه نهادی، یه ارگانی، یه سازمانی مسئولیتش رو خیلی جدی بیاد به عهده بگیره اینجور نباشه که قوه قضاییه بندازه گردن شورای عالی امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی به کل بزنه زیرش که تو رو خدا شوخی نکنین با ما و حرفا الان اگه هنوز پای است منم زنش قد بلندم پزشکی دست شما دادنگ خجالت دادین هم ما رو هم سامی رو سامی جان جا. چرا اینقدر دیر چهار تا برنامه مونده ببین یعنی بگی الان بگی نه من برخورد فیزیکی میکنم با چرا ببین دیر فقط میگم میکنه دیر. حالا دیر و زود نداره که شما الان به من بگو آره یا نه حالا رو... تلفن رو بفرستن حالا ببین قد ببینیم. بلند هست دندون پزشک هست مهمتر از همه عکس مشکان یه دقیقه این خیلی مهمه مهمتر از همه دختر تبریزیه آه. بله آه. آه. اصلا دیگه دختر تبریزی ته ته زن زندگیه من یعنی من اگه نه نخ... جا می چی میگه اون وسط مرسا چی گفتی من, من گفتم کارآموزامون الان ما چرا چرا, چرا نداره کارآموزامون میخوان در هم پسرا هم دخترا همه میخوان درسشون رو ادامه بدن بله پزشکی هم میخونه شیدم بله دندون پزشک شدن ایشون بله خوارسامی خیلی ظاهرا میسته که دوست داره دیگه حالا ببینیم چی میشه دیگه اگر که حالا خانم شما مطمئن خیلی ممنونم از تماستون مطمئن باشین اگه سامی هم نخواد من آدمش رو دارم معرفی میکنم سامی رو میذارم اصلا جیب عقبش آقا اصلا چرا راه دور بریم دختر تبریزی سعید سعید و ما اینجا داریم میخوایم زنید آقا سعید جان شما شما میخوای درست تو ادامه بدی یا چی؟ والا کار تموم بشه من آمادم در شکل از ببین به این میگن یک پسر خوب <تصفيق> میدونه چی کار باید بکنه <تصفيق> خودشیرینی کردم. <تصفيق> خوب سایت چه خبر از آب و هوا امروز فرشید خبر جالبی که باید در زمینه هواشناسی به شنونده‌های عزیز بدم اینه که هواشناسی مازندران اعلام کرده توی ماه بارندگی استان مازندران زیر نرماله حالا مم. این خبر چه اهمیتی داره به خاطر اینکه کمتر از دو هفته دیگه تعطیلات نوروزی شروع میشه ایرانی‌ها تو نوروز خب سفر میکنن و به دو دسته تقسیم میشن در حقیقت اونایی که میرن شمال و اونایی که دوست داشتن برن شمال خب, <تصفح> <تصفح> خب نه دست دوم که ایچی اما اونایی که میرن شمال خب این خبر برایشون مهمه دیگه نمیخوام برن شمال از ترس بارون کل تاثیراتو بچپن تو خونه و ویلا و پلاج و چا بله برایشون بله بله براخره میخوان برن دریا و جنگل و خوشگزرونی کنن و پرتاغال و زدتان بخورن بله. و بعد نه اینکه شمال وقتی بارون میاد ما به با قصد کش میاد اینه که بهتر حالا حداقل تو ایام عید نیاد این خبر خبر خوبیه برای مسافرین نوروزی شمال برو پس این چند روزه رو به خاطر مسافرین عزیز من خواهش میکنم که بارون نیاد یا کمتر بیاد مردم از شمالشون به اندازه کافی لذت ببرن آه. این بود بینی من پیشپینی شناسی مازندران بود البته دیگه آره دیگه ولی گفتم خب به نام خودم باشم نونمون حلال <laughs> پیشبینین سعید بودین فقط راستی فرشیدی نکته هم بگم اونم اینه که مسافرای نروزی سمت شمال که میرن تو ایام تعطیلات حواسشون جمع باشه کار بدی نکنن چون این سفرها بالاخره خاطره میشه یه جورایی مثل نوستالجی که موضوع ب... برنامه ما هم بلده. هست براشون باقی میمونه به قول خانم همیرا خاطرات شمال, شمال محال, محال از, یادم از, از یادم بره خاطرات شمال محال یادم بره همه شور و هال محال یادم بره جون محال یادم بره. بره اون همه شور و هول محال یادم بره احباب Merci ça و ما بریم سراغ خاطرات شمال مها نه اون که گذشت نوستالژی های جغرافیایی خاطرات خاطرات شمال بیه جوری حال نوستالژی جغرافی هایی دیگه از خاطره بازی در قربت تا خیابون ها و پیاده های سرنوشت ساز بدانید و آگاه باشید همین کوچه پس کوچه هایی که غغر کنان هر روز از آنها گذر می کنید و همان بدری خانوم که همیشه روی پله های خاناش و رفته آمده آمد محل را زیر نظر دارد و حتی همان سبزی فروش محل که سبزی سبزیهایش گل دارد و دلش نمیآید ریحان برایتان بیشتر بگذارد همه و همه روزی ممکن است منشأ دلتنگی و نستالژی شما بشوند پس چنان چه قدرشان را همینجور که هستند ندانید، یک روز به یاد تمام اینها آه از نهاد براورندگانید امزاو جمعی از دلشون بره کوچه پس کوچه ها و همسایه های محله سابقشون تنگ شده ها ولی چه فایده که دیگه از اون محله یه جایی دیگه رفته های رادیو پس, پس دا دا دا دا, دا, دا, دا این هفته به ما از نوستالژی ها و خاطراتی بگین که میشه با حسرت و دلتنگی ازش یاد میکنیم. این هفته نوستالژی های کودکی، جوونی، دانشگاهی، کافی شاپ، اشغولانه، جوب آب، سر سرکوچه، پارک، خیابون، محله، درز دیوار آقا هر چی دارید تو دل تنگتون نگه ندارید بریزید بیرود به ما هم بگید از قدیم گفتن آقا خاطره رو باید با بقیه شریک شد پس حالا اگه سن و سالتون هم بیشتره مثلا تا صحبت از زمان شاه یا شاید هم میشه آهی میکشین که یادش به خیر چه دورانی بود باز هم با ما تماس بگیرین و به ما بگین چه خاطرات و چه نوستالژی داشتین که با به یاد آوردنش زربان قلبتون تندتر میشه و یا شایدم آهی از ته دل میکشین یادم ساده هشتا سرباز بدم تو پادگان یه رادیویی تو اون پس تو پیدا کردم اون موقع برنامه تو نمیشناختم روشنش کردم با موجا همین که ور رفتم یهوی صدای یه آهنگ با حال شنیدم اونجا بود که گفتم های این خودشه اینه که من میخوام گوش به به بهبه خیلی ممنونم از تماستون چه حالی چه حالی به به این میگن عشق ن... در نگاه اول اما م جره پیچونده اومده رو فرکانس ما با خلاصه گرفتار ما شدی دیگه دم شما گرم دیگه حیف که بلی داریم میریم دیگه آقا این هفته یعنی امروز دوشنبه است دوشنبه هفته آینده بای بای ما رفتیم یعنی یک هفته بیشتر با هم نیستیم قدر این یک هفته ها رو بدونید بریم سراغ کامنت ها جب حالی داره سلام علیکم خسته نباشید. بله بله کامنت های امروز خیلی کامنت جذاب بود ولی اینقدر بلند بودن و طولانی دیگه ما دوسته تا بیشتر انتخاب نکردیم ممنونیم از شنوندگان عزیز آقای علی پیر حسین پور کامنت گذاشته داشته بودن نساجی یعنی همون رفتن ما تو کودکیمون. اولش میرفتیم تو همون که نه آب سردش معلومون نه آب گرمش. یهو آب میشد 20 درجه زیر صفر یه وقتام 70 درجه بالای و مادر گرامی با شامپو پاوه تخم مرغی چنان میافت رو سرمون که تمام سلولای مغزمون جابه جا, جا میشد. بعدتر این محلم وقتی بود که با کیسه کلوفت و زخیم با رو... با روشور میافتاد جونمون خدا شاهد از پوستمون کنده میشد و تازه مامانه فکر می کرد چرکیو همچنان ادامه میداد اون واسط یه کتکی می که قبول وول نخوا. ولی به خدا وول نمی خوردیم. شدت فشار کیسه ما رو اینور بر اونور واقعا موقع سنگ پا زدن که دیگه دو سنت از قدم کوتاه میشه وقتی همون تمام میشد کلی لباس تنمون میکردن و یه یقه اسکی هم روش از شدت و خستگی و ضعف خوابمون میبرد آخرش هم همه میگفتن آخره نگاهش کن تمیز شد چه راحت خوابیده نمیدونستم بیهوش شدیم ما میفهمیم بیهوش شدی حالا فرشته جان من واقعا اصلا از این خاطرات نداره شما بعد بهتر یادتون باشه ولی گویا سنگ پا نمیزدن واسه شما فرشته با... نه شدن... من نه چرا من بعد خاطره داشتم باشه الان بعد منظور چی بود اصلا همین که منز... آقا ببینین کنین ببین من این همه مو دارم به خاطر همون شامپو پا به تخم مرگی دیگه <تصفيق> چی فکر کردین دقیقا همینه باقا. ولی سنگ پا نزدن من قدم <تصفيق> بلند شده آره. نزده, نزده. ماشالله ماشالله <تصفيق> فرشید جان منم سلام میکنم سلام علیکم مرسا پا هم گفته فرشید بدترین خاطره من خاطرات کوتک خوردن مدرسه دست معلم و نازم بود از کتای خوردن با کابل تلفن و شیلنگ تا کشیدن خطریش و خودکار لا انگشت بگیر تا چاره انداختن وسط سر جلوی اون همه همسون سال خوده او او او. یعنی قشنگ میشد یه مستند گوانتاناموی ازش ساخت <تصفيق> امیر خان اینم خاطره از یاد ما انداختی من واقعا نمیفهمم این کادر مدرسه و موقع چی فکر میکردن بعدم نیامدن به امون میگفتن چوب معلم گل هرکی نخوره خوله. خوله شکر ما که خوردیم رو به آره کاملا همکارمون داشته. هستن ایلی واقعا دارم اصلا خون اصلا نخیر بچه ها دعوانه <تصفح> <نکنی>. دوست باشین دوست <تصفح> باشین <تصفح> خب بزن منم یه کامنت دیگه براتون بخونم پینت موری نوشته که پرشید آشقتم باورت نمیشه ولی هیچ برنامه مثل برنامه تو خوابت چشم نمیپرونه یه داروی زده خواب و العاده نشات آورد و وقتی خوابم گرفته و نمیخوام خوابم ببره بس زمان منافی فکر من فامیلاتون باشه بله برنامه تو سرشد زرافت و هنر فقط بینهایت مخمل مقمل صدا تو خواباوره و من قرصه خوابم رو ترک کردم و با شما میخوابم پرشی جان بالاخره ببین انقدر نالکه ادید دست ما تنها فامیلاتون ای زنگ زبن <تصفح> <تصفح> کومنت هم ای میذارن منم بعد بخونم بالاخره خواب آوری نشاط آوری بلا تکلیفی مولا من خودم هم نمیدونم واقعا نمیدونم این خواب آور بودن خودم من نمیفهمم چجوری میتونم با این سر و صدایی که ما را میندازیم چجوری میتونیم ما خواب باشیم واقعا من اینو متوجه نمیشم سمانه منافی هم خیلی متشکرم البته فامیل سمانه منافی دارم ولی نمیدونم این کدومشونه نمی من سلام عرض میکنم خدمتشون <تصفيق> امزا آقای بهزاد از هولند، نرگس و مسی از تهران، مجد شجاعی از اقبال، کیوان از کالچوغستان، کاپتان هادوک از تگزاس و جا از یه جا که سوسک نداره. از یه که سوسک نداره؟ راه های ارتباطی با برنامه، تلفونا 2420-211-2433، 2420-211-2463 و 2420 2226 22 و تلگرای ما ادپسفردگرام. خیلی متشکرم در اینستاگرام فیسبوک میتونید میتونیدdemo رو امروی کنید اپلیکیشن رادیو پاسوردو رو یادتون نره در این روزهای آخر که این یک هفته بیشتر نمونده شاعر میگه بیا تا حتی اگه قرار یه هفته کنار هم بمونیم مثل کف دست باشیم نه مثل 60 همدیگر رو انقدر نپیچونیم بیا... رادیو بیا تا حتی اگه قرار یافته کنار هم بمونیم میز است چپ دست پوشیم نماز نشه هم دیگه رو تنها پیچونی رادیو پکا فش. من که اشق اول داشتم برعکس تصورات و چیزایی که همه جا میگن اشق اول همه چی تموم شونزده سالم بود پای اخ پنجره اخ اخ با هم آشنا شدیم اونا طبقه دوم ما طبقه اول پنجره هم روبروی هم نامه مینداخ رمانتیک اصلا یه چیزی آخی. جاز خالی همون هم اینجا نشسته هم نوستالژیه هم خاطره هست هم حاله هم گذشته است هم آینده باریکل درستش همینه یعنی تا تنور داغ بوده نونه رو زده چسبونده کارو تموم کردی یاد بگیرین نذارین عشق اولتون به پیچونتتون ایشالا خوشبخت بمونین همینجوری عشقهای اول همیشه کنار خودتون باشه مثل همین خانوم که تماس گرفته اما، اما، اما جون هم براتون بگه از اونجا که تعداد زیادی از ایرانی ها به دلایل مختلف خب ایران رو ترک کردن مثل ماها و در اقصان نقاط دنیا ساکن شدن یکی از نوستالژی های مکانی خیلی شایع بین ایرانی ها نوستالژی وطنه که به اشکال مختلف این نوستالژی سرواز میکنه یعنی شما در نظر بگیر دیگه از کشک که دیگه کشکیتر ما چیز رو نداریم آقا همین کشک یه دی بعد از یه مدت زندگی خارج از ایران به محض دیدن همین کشک چنان عشقی میریزن که کشک و عشقشون یکی میشه با هم حالا شما شاید فکر کنین مثلا این کارا عداعتواره ولی باید خودتون در سال بیرون از ایران زندگی کنین تا بفهمین فهم کشک و رشته بود چه میدونم امم کلوچه فومن، کلوچه فومن خودمون که تو ایران از کنالش رد میشین مثلا گهی نگاشم هم نمیکنین، چقدر براتون ببینین عزیز میشه دلبری میکنن اینا وقتی که از ایران خارج میشین. یکی دیگه از نوستالژی های غربت، البته از نوش کمیش مربوط به سوسیس کالباسه. وای وای وای وای وای, وای, وای. یعنی آدم ببین صد جور جامبون و سوسیس و کالباس درجه یک خارجی. بخوره تو خارج بازم یه آهی میکشه میگه چی سوسیس کالباسه ایران نمیشه. آخ آخ آخ. حالا دیگه من دیگه براتون نمیدونم از بربری و سنگک و نمیدونم پنیر لیغوان و اینا دیگه نگم دیگه بیفتیم تو این مسیر بخوام نوستالیژی کمی شکمی عزیزان دور از وطن رو بررسی کنیم یه هفته هم باید در موردش صحبت کنیم دیگه شما خودتون به قول شاعر تا ته خط رو برید ببینیم که قربت چه میکنه چه نوستالیژی هایی داری نور و پیشونیمون نوشتن سفارت سفر تقدیر ماست واسه همیشه ما همینیم بدون ریشه ما همینیم جنگله بدون ریشه یه روزگاری درد قربت و نستالژی وطن مال یه کمی بود الان ولی هر کیو میبینی یه کسی رفته غربت و در هر مراجعت به وطن یا حتی وقتی از همون خارج زنگ میزنه احوال پرسی حتما باید از خاطرات شمال محال یادم بره هم یادی کنه امروز این کبرا دخترمه خارج نشنه من زنگ زده بود حالا احوال چون دلش برای شب نشینی با دخترای فامیل تنگ شده بود گفتم کوبرا جون تو هشت سال رفتی اون یه بارم که مسافرتی اومدی سراغی از من نگرفتی حالا چی شده یهو یاد ما کردی گفت هیچی والا فقط خواستم حالتو بپرسم گفتم خوبم قربونه تو چطوری گفت منم ای بد نیستم دلم برای اون خورش ناردونی که میپختی تنگ شده راستش الان داشتم برای دوست خارجی میگفتم ما ایرانیا چه غذاهای ای داریم بعد رسیدیم به ناردون و من هرچی سرچ کردم تو اینترنت دستور پخت شبیه اونی که تو درست میکردی پیدا نکردم این دوستم گفت زنگ بزنم از خودت بپرسم گفتم خب پس معلوم شد خیلی دلتنگ تنگ شده بوده دخترم بهجان. والا به جون خودت سختی های اینجا رو با یاد خاطرات شماها تحمل می کنم گفتم باشه قربونت. فقط به اون دوست خارجیت بگو مایک کازین دیدنت نود ریسپی یعنی من اگه می‌فهمیدم اینایی رو که هر جا میرن دوچار نوستالژی یه جای دیگه میشن. دل نگرانی ما از خودت‌هایی آدمیست نیست که می‌خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن خب بگو ببینیم کامران ملک بوتی. چه خبر ها سلام سلام فرشید جان امروز شورای سنفی نمایش بالاخره فیلم های نوروزی رو اعلام کرد در مجموع هفت تا فیلم توی این روی پرده به نمایش در میان بادیگار ساخته حاتمی کیا عبد و یک روز سید رستایی خشم و هیاهو هومن سیدی کفشای همکو که امرت پور احمد پنجاه کلو آلبالو مانی حقیقی و همینطور من سالوادور نیستم که خب یه ده روزی اکرانش شروع شده تو این چند تا برنامه باقی مونده این چند تا فیلمو معرفی میکنیم راجب سال سالوادور نیستم که قبلا گفتیم بریم سراغ شنیدن بخش از از فیلم بادیگارد. با... با خشنویم. خدای خدا ما داریم میشیم بادیگارد. به تو سینما میگفتن چیه ماموری که تو تاریکی مردم سر جاشون میشونه. نمیخوای قاحت تو کنی؟ نه، دلم برای مادرم تنگ شد. بابا من میترسم از اون روزی که دیگه نمیرم. ش کم من من به این جوون تو اوج روزای چند گفتم بله اون موقع هم پدر خدای ور هم راضی بود نه مادرم که می گفت راضزی بیوه میشم ولی هر دوشون تخال من احترام گذاشتم بخش صدای فیلم بادیگارد ساخته بربرایممه هااتیکی ها رو شنیدیم بازیگراش کهن کامران؟ بازیگرای اصلی این فیلم پرویز پرستویی، مریلا زاری، امیر آقایی، بابک حمیديان، شیلا خداداد و فرهاد قایمان هستن. پرش پرستویی به خاطر همین فیلم هم که امسال جایزه گرفت دیگه. بله بله. خب بریم سراغ موسیقی از اون ناحیه اون بگو دقیقا چه خبر؟ از اون نوهیه دقیقا آرزام جدیدترین آلبوم امیر عظیمی به اسم ای پی با مجوز رسمی ارشاد منتشر شده اما تو فضای مجازی عظیمی دو تا شماره حسابم اعلام کرده که هر دوست داره مبلغی رو به صورت همت عالی واریز کنه آلبوم جمعاً چهار تا قطعه داره به اسم اسیر لیلی مترسک و شهر اینو واریس کردی یا چجوریه ما باید مفتی پخش کنیم یا چجوریه پولش دادی یا ندادی؟ من جشت شیست کردم برای از ها سلبات رو دادم دیگه <تصفيق> چیزیدیشون <تصفيق> ممنونم بریم بخشی از یکی از کارهای امیر عظیمی از آلبوم ای پی رو بشنویم به اسم لیلی با کامران عزیزم می کنیم تا فردا تا فردا خدافزیم لیلی تو ندیدی که چه با من کرده مردم چه بلا آب به سرم آوردن در خانه من عشق خدای میکرد بایه کنر کنر نمایی میکرد لیلی تو ندیدی که چه با من کرده مردم چه بلا به سرم آوردن من یمان خدای با سلام 22 اوکتیبر شب را ضمن وحشت از تهدید کره شمالی به استفاده از بمب اتمی در برابر مانور مشترک آمریکا و کره شمالی با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز مینمابیم انتصاری حجت الاسلام رئیسی داماد آیت الله علم الهدا به عنوان تولیت آستان قدس رضوی نظر کارشناسان که خب سلطنت تبسیان تموم شده و سلسلی علم الهداییان همینجوری داره تو خراسان بیشتر ریشه می ممنوع شدن اجرای کنسرت و برنامه های مستقل موسیقی در دانشگاه ها توسط نهاد نمایندگی رهبری و در خبس دانشجویان از نهاد رهبری که اگه در مورد نخلیوی های غذای سلف سرویس هم نظری دارین بگین خجالت نکشین و شورای نظر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا به ایران 150 میلیارد دلار پول داده است و پاسخ ناظران که دادش حالا شما هم جوگیر نشونی پولای بلوکه شده خود ایران بوده صدقه که ندادین آخیش مهمترین ساتی تابی خبری ساعت گذشته شامل می می‌شدند اینچ مشروع خبرها با چپچهی همکارم بوئی بوئی با سلام یکی از مویدبانان دینا که در درگیری با یک شکارچی غیرمجاز وی را به قتل رسانده به قصاص محکوم شده بود پس از 7 سال حبس با گذشته اولیای دم از مجازات اعدام گريخت در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت در حال حاضر مویدبانان به خاطر دیدن درد سرهایی که برای این قبیل همکارانشانی ایجاد می‌شود مجبورند به درگیری و شلیک به سمت این شکارچی ها با خواهش و تمنا و من بمیرم تو بمیری آنها را از شکار غیر قانونی منصرف نمایند وی پیشنهاد داد که به جای اسلاحه به این شکاربانها آب میوه خنک و شیرینی خامه ای داده شود تا شاید بتوانند با تعارف کردن این اقلام تصمیم شکارچیان غیر مجاز را تغییر دهند پایان مرش رو ای بله همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه برادر مشکل هستیم بلد. تا مشکلات شما را گشایی نموکن مشکل جان بفرمی بله سلام علیکم ای مشکل جان آقا چی شدین این شرای نگهبان چرا پس این تن نتایج انتخابات تایید نمی کن آقا خب ببینید تایید نتایج انتخابات کار آسانی نیست حقیقتن در حال حاضر حضرت آیت الله جنتی و همکاران در شرای نگهبان در حال بررسی آره هستند و این کار وقت گریه دیگه بگم شایه شده مشکل که ده. چیزی میخوان تویخبرگان هرج شده توا از زیر یه جوری به چپونن بره تو مجلسه هم این های حداد عادل و این راستی من به شدت تکزیب میکنم این مسئله رو و واقعی حداد آدل چه خوراک کشینه که اینجوریانه توی تو, تو مجلس ششم هم سیو کو بود دیگه بعد یا همه رای باطل کردن اینشون شد سیوم رفت جای یکی دیگه. نه, نه ببینین ها سی نمای های رسن های استکباریه بنده همه اینا رو تکیب میکن تکزیب میکنم, میکنم. بله. بابا میگم تو مجلس ششم همین کار کردن علو بند صدای شما را ندارم ال... الو دوباره کر شدی. الو رزت ها دادن نیفتده سوال بردیری بپرسم. مشکل مشکل میشه آه. بله بله بله الان بنده صدای شما رو شنیدم بله, بله. میگم به مشکلی آقای پول نماینده رو به این حرفاش نمیخواید رسیدگی کنین شما دو حرفها حرف این نظرتون که این شو آبا همون فیلم انتخاباتیه که اومده بیرون بس. داره به ترکی به خانوما و مردم قزوین بعدو بیرا میگه دیگه با. بله البته اون فیلم رو بنده دیدم منتهات چون به زبان ترکی بود متوجه نشدم بنده آبا زیرنویسش همه جا هست دیگه یعنی نه ببینید ما کردیم ب... زیرنویس گزاریه اون فیلم وسط تعدادی اوامل جاسوس وابسته به انگلیس صورتت گرفته بود که این ها ای الان دستگیر شدن در اختیار ما هستند دیگه و اون طرف که این حرفها زده راستست داره میچرخ خیبت رفتتی اینایی که حرفاشش زی نوویش کرده بودن دستکی کردی ببینید ایشون گه این حرفها رو به ترکی ای. زده خب قصد بشین بوده که فقط مخاطب بینه ترک با. زبان بفهمن چی گفتن نگه یعنی چ اصلا معنی نداره کسی بخواد حرفایشون رو ترجمه کنه. یعنی شیلیه حرفایی میزنی که آدم وصل و نخایش میاد تو دشه واقعا من نفرکت کنم باییو م شریفای شور دادن داریم نزدیک میشه. نه نه ببین تو شروع میکنی یا من شروع کنم؟ نه آقای جل من چه خلقتی کردم یه بار تو این برنامه شوهر دادم آتی دادم دستی. بله. مشکل به من گوش کن شور بی شور. ماله من از این تماود و فروتنی شما خاله تشکر میکنم و خودم شروع میکنم مراسم را. دیگه. خدا یه من مشکل شور نه نمیفهمی. علیو مشکل برق برق من شروع کردی علیو. با تشکر کنم توجه برخوانه شما برخوانه تا دیگر و برنامه دیگر و قرص عصابی دیگر خدا, خدا نگهدار مشکل ساکت برای تموم شد الو برخوانه مشکل برخوانه مشکل میشنو بیشنه الو آقا که اینو قد کنه بکش الو بسته بابا یادن قدیم رو سا میلا و دور رو همجمع می شدیم می گفت که میکن دییم حل می ولی الان تو تلگرام دور هم هم هم دو هم hey. hey, رو همجمع میشیندنصبحه خیلی میین همدیگه رو هم رو شاامون نه ها دعوت میکنین آخرش هم از همدیگی خلداافی هی. خ کجا س روز های قدیه؟ ممنونم ازت که این ا این موضوع انتخاب کردی ق بنت بابا هم از کف خیا بوده قربونت بابای امیرالی ای بابای امیرالی دم شما گرم ممنونت شما شود که علت به وجود اومدن بعضی نستالژی های مکانی و جغرافیایی، هایی گای اتفاقات و مسائل عاطفی و عشقیه البته مکانی که میگم نه به معنی ناجوره اون نه ها یعنی حالا تا ما هم میگم مکان سریفه فکرشون میره سمت مکان و خونه خالی و این برنامه ها چقدر منحرفین آخه شما منظورم اینه که خاطره ها و نستالژی هایی هستند که به یک سری جاها و مکانهایی بستگی دارن که در اون مکان‌های عاطفی مشترکی اتفاق افتاده. <تصفيق> خب،, خب با این توصیف که حالا من خودم هم گفتم خونه خالیه هم میتونه به حال مکان محسوب بشه چون به هر حال بالاخره یه خاطره مشترکی شکل گرفته دیگه حالا کاری نداری. شما اصلا فکرتون از اون داستان آقا بیا بیرون بیاریم بیرون منظورم مکان‌های عمومی پارک، کوچه، خیابون، کافی شاپ که مثلا با دو یا دوست پسر سابقتون یا حالا هر چی رفتین اوکی اوکی ادامه بدم الان؟ نگارهرس ندین دیگه روزهای آخری همش هم میرن توی چیز... این جور خاطرات مکانی گوش کنین این جور خاطرات مکانی جوری هستن که تا سالهای سال تو ذهن افراد باقی میمونن و گاهی باعث بروز رفتارهای عجیبی میشن مثلا مثلا داری با یکی را میری یهو میبینی پخ از زیر گریه میگی چی شده هیچی چی جلوی یه فلافلی رد شدین که 16 سال پیش طرف با یکی از اشقای مثلا سابقه جونجا فلافل خوردن با ترشی اینجوری اند حساسن بعضی هم هستن انقدر براشون منقلب کنند دست یاداوری این خاطرات که آقا مسیرای رفت آمد روزانه رو یه جوری تغییر میدن که مثلا از مکانها و خیابونهایی که با عشق سابقشون به شکلی خاطره مشترکی داشتن عبور نکنن اینه که یه وقت می‌بینی طرف چه میدونم مثلا طرف خونهش اکباتانه؟ علو اونا که تهران هن دیگه حالا من بقیه جار که بلدم تهرانو بلادم. طرف خونهش اکباتان محل کارش ونکه. بعد مثلا میخواد بره سر کار، آقا چند تا دور قمری میزنه مثلا جاده مخصوص میره سمت تو کرج، از اون اونور میره تو آزادگان، از جنوب تهران 40 کیلومتر میره سمت شرق، از اون سر تهران سر افسریه میاد میره تو امامالی خلاصه خلاص مسیر 20 دقیقه ای رو دو ساعت و نیم میکنه تا برسه به کجا به که چی؟ از خیابونایی که خاطره مشترک با اشقش داشته عبور نکنه یعنی میخوام بگم در این حد لشت <متصفيق> آقا من حواست من به شما هست ما مشتریای های قدیمی رو یادمان نمیری که آقا یاد من که نمیری هیچ حواست منم بهشان هست خب آقا چی کار بکنم برای شما مرتب بشه ای با چشم. ای با چشم نمیای آقا پیش ما جان آقا اصلا تهران نبودی جان من برای کار و اینها رفته بودی جای دیگه خب سلامتی. حالا من که شوخی میکنم ولی آقا مشتری مشتری های قدیم نگه یه وقت جسارت نباشه من شما رو نمیگم ولی معرفت های قدیم یه چیزی دیگه بود آقا جان شما ما یعنی یه سری مشتری داشتم ثابت هرکی یه روزی از ما می میامد اینجا بنده در خدمتش بودم حالا اصلا دیگه از ده نفر که میان من هشت نفرش اینو اصلا نمیشناسم جان شما جدی میگم آقا قیل چی چی قد کند آقا. این علی علی این پسره دوباره علی علی کجایی تو من هر دفعه شما را صدا میکنم و هنجره من در بیاد تو خجالت نمیکشی بیا ببینم بدو باره از او کشوپان دونه غیچی نو برای من بیار ببینم بود آقا میبینی آقا شاگردم شاگردای قدیم دیگه من بزانی بغلای رو تمیز بکنم تا ای غیچی رو بیاره من خود من یه زمانی شاگرد بودم دیگه آقا یعنی آدم اشکش در میآمدان روزا یادش میاد اوستا داشتیم چیزی که ماییشم جان شما نگاه میکرد آدم قلبش میامد تو دهنش ترس بعد مگه ما ازشان میتونستیم دور بشیم اینی چسب میچسبیدیم که اگه اوستا بگه غی غیجی دستش جان شما دارم میگم همه چی ها تو این دور زمان داغان شده دیگه هیچ سر جای خودش نیست که جان خطریشو بالتر ای با چشم. ای با چشم اجازه بده ما این قسمت مرتب بکنم به اونجا میرسیم دیگه. آش کرد قبلی ولی آقا خوب نبوده این خراب کرده من فنم میفهمم دیگه طرف تازه کار بوده حالا دیگه بله دیگه از ما گفتم بود جان بله اون که بله ولی خب دیگه آرایش کرد چیزی نیست که بشه عوضش کرد که آقا این علی گوش علی یه لحظه ببخشید آقا علی دوباره این گمگول شد جان آقا در اصل چ که ما شاگرده ایشانیم والا بخدا اجازه بده من برم این پشت گوش از این به بیچانم اینجوری نمیشه الان من برمیگردم علی؟ علی کجای جایی؟ تو خجالت نمیکن چی پسره؟ بیایی بیدینم بره خب اینو گفته پسر را بینوی پس فردای رانا تی کوس آخر مرا کشه رانا بیلده و سی کرده جانه رانا رانا بینه تی درسانه رانا آی روسی آی رانا جان ش ما رو مطات کردی میخوای بذاری به کجا بری آخه بابا دیوونم اون نکن آخه این چه وضعیه از چه تو ای میگی میخواام برم میخواام برم بمون بمون بابا جون بمون مرسی قربونت ب ببین اون موقع که می برم میخواام برم گفتم میخوام برم ولی بر میگردم ولی این دفعه دیگه دیگه آخرشه دیگه شرمنده دیگه میرم و بر نمیگردم. لطفا اینا که معتاد برنامه شدن انقدر زنگ نزنن بمون بمون نکنن نمیتونم بمونم مرسی اه اما خانم آقایون دختر خانم‌ها آقا پسرا این روزا ما زیاد میشنویم که به خصوص پیسری از مرکز خرید های مناطق مرفه نشین شهرهای مختلف کشور های عجیب غریب خارجی دیده میشه که خیلی از اونام ظاهرا به صورت قاچاقی وارد کشور میشن جالبه آ یه زمانی اون قدیمی‌ها مثلا یادتونه دیگه ویدیو قاچاق میشد به داخل کشور دیگه چه میدونم مواد مخدر و مشروبات الکلی و اینام هم خب همیشه بوده جزو اعلاهم قاچاخ شوانده الان هم هست اما آخه کی فکر میکردی؟ یه روزی میوه میوه ی هم تو کشور داشته باشین؟ اینه که پس فردم آمدن به شما گفتم مثلا چه میدونم آقا اینجا نفس نکش هواش قاچاقی هم نباید تعجب کنید دیگه یعنی ما که تعجب نمیکنیم شما رو نمیدونم آیا از خوردن این همه میوه های معمولی و تکراری خسته شده؟ اید؟ آیا برای تجربه جدید غیر لحظه شماری میکنید؟ آیا فکر می کنید قوانین کشور دست و بال شما را برای رسیدن به میوه دلخواهتان بسته است؟ میوه بینول متولیه واردات انواع اقسام میوه های خارجی از اقسان وقت دنیا در خدمت شما است. میوه بینول این افتخار را دارد که از ماداگاسکار تا مولداوی را برای میوه مورد علاقه شما جستجو نماید. تاب تو میوه یه مون هشتر از هشتراست به چه گندگی؟ از <تصفيق> زمان اون حشره نیست اون بوروزون فیلانبیای آفریقاییه. وای عزیزم چطور تونستی همچی میوه رو تایید کنی؟ کاری نداشت فقط یه زنگ زدم به میوه بینال. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> میوه بینال راهیست برای تجربه مزه های دورافتاده. میشه یه اون از اون موزا پوست بکنی من بخورم؟ ای خانی اونم موز نیست که هندونه. خانی هندونه چیه؟ نه هم زرد هم درازه موزه دیگه. آه نه عزیزم اینو سانبالانیکای پورتوریکوییه. مزش یه چیزی شبیه هندونه خودمونه. وای خدای من مگه که اینو از میوه بینول گرفتی؟ آه آره از میوه بینول گرفتم خانی از کجا معلوم. میوه بینول فاصله شما را با انواع و اقسام خارجی کم می‌کنه. میوه هایتان را با بینول تهیه کنید میوه بینول هیش ما بیا هیش ما بیا فری بود چه خبر سلام اومدم اومدم اومدم اومدم سلام سلام آقای مایلی کنندن دو روز پیشی اظهار نظر جالبی کرده بود و یه نقدی زده بود به خاطرات گذشته چون ضم انتقاد از محمد دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال حدود در سال پیش زمان محمود احمدی نژاد گفته علاقش به اوس محمود اعتقادی است و اضافه کرده همچنان ایشون رو دوست داره بله تو فکر هم چیز عجیبی هم نباشه خب این دو نفر خیلی هم شبیه هانی یعنی میتونن دوست دوست دوست. حالا ام امروز هیت رئیسه اون فدراسیون زمان دادکان در پاسخ به اثارت آقای مایلی کهان گفتن در اثر این علاقه اعتقادی به احمدی نژاد و رعی دادن به ایشون چند روز سرمربی تیم ملی شدی و بعدم سرمربی چند تیم لیگه برتری شدی لطفا به ملت بفرمایید در آمده حاصل از آن رعی دادن و علاقه اعتقادی چقدر بوده؟ اوه اوه من فکر کنم آجی ماهیلی در جواب اینا دیگه باید بره سراغ فوشای بد بد دیگه. بای بای. آره. محلات... بعد آره. باشی. آره. <تصفيق> یه حرف جالبی هم فرشی جان آقای حسنی خو رئیس حراست وزارت ورزش در مورد اون طرق پرانیه دیروز تماشاگرها تو ورزشکار آزادی تهران فرده با گفته خوب. کار کار دشمنا بوده به <تصفيق> این دو تا صدا گوش بدین اول این صدا مربوط به آقای تاج رئیس سازمان لیگ که در مورد طرق اندازی گفته و دوبومی هم صدای خود آقای حسنی خو رئیس حراست پشنبیم این ترقه سومی چه زدن اون ترقه کنار نیمچات تراکتور سازی مافتاد حتما یه مجروح یا یکی دو تا ما از روح به جا نمی الان بعضی بعضیا تحلیل می‌کنم که ممکنه که این اصلا دوستان ما این کار نکرده باشن دشمنان ما این کار کرده باشن برای اینکه به دنیا نشون بدن که امنیت وجود نداره بله خب خدادرشوک پای دشمن به ورزشگاه هامونم باز شد اصلا کار آمریکا و اسرائیل بود آقا ما گلیم هممون گلیم بله، بله خیلی ممنون از <تصفح> فری بررز غریب با خداافظی می کنیم تا فردا تا فردا خدا گهدار. عالم، که این روزا زندگی راحت تر شده اما هیچ چیزی عطر و نداره. مثلا خرید عید اصلا مثل قدیم نیست. نمیدونم همه چی قدیم قشنگ تر بود، بهتر بود. خوراکیای مدرسه، بازیای دوران کودکی، وسایل لوازم و تحریر آره کارتونا همه چی، همه چی یادش بخیر. نوشافرین هستم، خداحافظ. یادش بخیر، خیلی ممنونم از شما. نمیدونم ولی شاید شدیم، تغییر کردیم دیگه. حالا ببینیم چه جوری این جوریه دیگه ممنونم از تماسی شما اما اما یه سری مکانه ها هم هستن داریم راجب نوستالیجای مکانی جغرافیایی حرف میزنیم یه سری مکان ها هستن مثل سینما برای خیلیا سینما رفتن های قدیم میمثلا جشواره های قدیم یه پا نستالژیان هفته پیشه برنامه مفصل رفتیم درباره صف و توش به حالا صف جشواره هم اشاره کردیم. اما کلن بر بچه خوره فیلم و سینما اسم جشواره که میاد آ جون دگرگون میشه بهش میگی چرا؟ چی شده تو جشواره مگه میگه وای نگو من برای اولین بار تو جشواره فلان تو سینما بهمان امخصو رو از نزدیک دیدم و میگهامموخصو یعنی عمویی خودت میگه نه بابا ام خست شکیبایی؟ اینکه همین نوستالژیای برای آدما تبدیل میشن به یه چیز از بین نرفتن یعنی طرف هر بار که از جلوی اون سینما رد میشه یاد اون جشوره میفته و مثلا هم اون سال میفته و اون طرف به هر حال تصویر زنده یاد خصوصو شکیبایی میاد جلو چشمش مثلا حالش دگرگون میشه یه وقتی هم هست مثلا داریم با دوستتون با ماشین میچرخین ببینین رفیقتون یا از حال رفت چی شد میگه این خیابونو دیدی اینجا زمان بچه گیام خونه مامان بزرگم بود اینجا بزرگ شدم هر هفته که از دست میره چه باز باید آب غند بدی به خاطر این نوستالژی مکانی ولی واقعا خونه مادر هم یه زمانی برای خیلی یا بهترین خونه بودا یادش بخیر الان نمیدونم خونه مادر بزرگم هزار قامت صدا داره خونه مادر با دوریه شادی و خوشباره خونه ی مادر بزرگ حرفای تازه داره خونه ی مادر بزرگ گیا و سبزه داره کنار خونه ما همیشه زبز زاره دشتاش پر از بوی گل اینجا همش بحاره دلوقتی مهربونه شادی میاد میمونه خوشبختی از رو دیما سر میکشه تو خونه خونه, خونه, خونه دا دا دا دا دا دا دا روزنامه روزنامه امروز. پیش خوب. روزنامه اطلاعات به نقل از حسن روحانی تیتر زده بود که مردم میان روی را برگزیدند البته نگفته نمونه که چون توی منو اصلاح طلبی نبود مردم از فرسه امسال کوچک زاده و مصباح و اینا به ناچار میان روی رو اتخاب کردم وگرده زالقشون با اصلاح طلبی بکنم ساز... سازگارتر روزنامه جوان به نقل از آیت الله یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان که این دور از راهیابی به این مجلس بازمون تیتر زده بود که به رأی مردم احترام میگذاریم تو رو خدا خجالتمون ندین این چه حرفیه شما اوستوانه نظامی اینجوری میفرمایید ما جنبه نداریم دو روز دیگه پرور میشیم ما روزنامه شهروند به نقل از رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران تیتر زده بود که مراکز آرایشی در تهران 25 برابر کتاب فروشی هاست یعنی خسته نباشیم همگی همینجوری پیش بریم همون چهار تا نصفی کتاب فروشی هم که موندن بعد یه مانیکور پدیکور هم بزنن تنگ کاسبیشون دخل و خرجشون جور در بیاد این پسفردام کنار شما رسیدیم به انتهای برنامه 996 من و تو هر جای این دنیا هم که باشیم یه اشتراک بزرگ با هم داریم یه حرف، یه عشق، یه دلبستگی بستگی که فقط من و تو یه اسم که با شنیدنش برای هر کدوممون دنیای از خاطره، تصویر و عطر دنیای از شوق علاقه تو دلمون می جوشه ایران، خونه جایی که توش به دنیا اومدیم، زبون باز کردیم و ریشه دوموندیم جایی که با همه خوبی و بدیش مال همه ماست جایی که حتی اگه گاهی تو اوج خستگی ها از کمی و کاسیاش دلمون بگیره چیزی از عشقمون بهش کم نمیشه چون خونهمونه که حتی اگه ازش دور باشیم باز تو تمام طول مسیر پرپیچ و خم زندگی تو قشنگترین رویاهامون به سمتش پرواز میکنیم شب خوش خونه ما قصه‌ داره پالبولو بسته داره پشت خنده‌ها یه یار آدمای خسته داره خونِ ما شادی داره ساز ما هیداره کچاهش تو بازی داره گربه های نازی داره هوای به تو تا بستو عکس اون رو